شنوتو با افتخار تقدیم می کند پاتر و زندانی آسکابان جلد سوم از مجموع داستان‌های هری پاتر نوشته جی رولینگ ترجمه ویدا اسلامی استم که قفصه سینهاش را میمالید گفت میگن بلک خیلی با اسمشانبر می بوده وقتی هری کچلو نبر را نابود کرد هری با دست پاچگی را روی پیشانیش اشتیخ تا جای زخ مشخص نشود استم ادامه داد همه این طرفدار های اسمشانبر تحت بودند بودن بیشترشون میدونستن با رفتن اون کارشون تمومه واسه همین دست از پا خطانه میکردن ولی سیریوس بلک آروم میگن بلک فکر میکرد اگه اسمشو نبد دوباره به قدرت درسه اونو معاون اول خودش میکنه بلک وسط یه خیابون پر از مشنگ ها گیر افتاد اون وقت چوب دستشو در آورد و نصف خیابونو منفجر کرد دوازده مشنگو یه جادوگر کشته شدن بعدش همونجا باشداد و خندید وقتی نیروهای امداد وزارت و جادو به اونجا رسیدن همونطور که قهقه میزد آروم خودشو تسلیم کرد آخه میدونی؟ اون دیوونها تازه اگر هم دیوونه نباشه تو آسکابان دیوونه میشه ولی الان آزاده تا حالا هیچکس نتونسته از اونجا فرار کنه آخا چطوری تونسته از چنگ های آسکابان فرار کنه هری حالش از قبل بدتر شده بود اون نیز مانند بلک قانون جادوگرها را زیر پا گذاشته بود آیا باد کردن امه مارج باعث شد هری از آسکابان سردرآور اتوبوس شوالیه جلوی مهمانخانه قدیمی و کوچک به نام پاتیل درزدار متوقف شد همین که هری از اتوبوس پیاده شد صدایی گفت اومدی هری کرنلیوس فاج وزیر سهر و جادو در مقابلش بود او هری را به مهمانخانه برد و بعد از اینکه او را به یکی از اتاق‌ها راهنمایی کرد گفت با اون وسی که از خونه خالت اومدی بیرون همه ای ما را گیج و دستپاچه کرد من فکر می‌کردم هر حالا که تو سالمی و همین مهمه ما به اون موضوع رسیدگی کردیم دو نفر رو فرستادیم که باد اون رو خالی کردند و حافظش رو اصلاح کردند دیگه از این حادثه هیچ خاطری تو ذهنش نمونده الان هم این دو هفته آخر تعطیلات رو میتونی همینجا جا بمونیم هری به میان حرف پرید و گفت صبر کن یعنی من مجازات نمیشم کار من غیرقانونی بود فاج با بیو سرگیفت پسر کون او یه اتفاق بود برای این کار که کسی رو به آسکابان نیم فاج با گامهایی بلند از اتاق خارج شد و هری با نگاهش او را دنبال کرد همه چیز عجیب و غیرعادی به نظر می دسید. اگر فاج نمی‌خواست حری هری را مجازات کند پس چرا در کنار مهمانه منتظرش بود در مدت اقامت خود در میمانخانه به مغازههای اطراف سر میزد و سرگرم بود یکی از چیزهایی که مدت آمی استاد و آن را در ویترین مغازه نگاه میکرد جدیدترین جاروی بازار آزرخش بود در روزهای آخر برای خرید های سال جدید به کتابفروشی رفت هنگامی که از شیشه کتابفروشی به داخل آن نگاه کرد بسیار متعجب شد در پشت شیشه فروشگاه قفس آهنی بزرگی قرار داشت که صدها نسخه از کتاب غولآسای غولها در آن نگهداری میشد کتابها با هم گلاویز می میشدند در های غضبناک با هم دست و پنجه نلم میکردند و همدیگر را گاز میگرفتند در نتیجه اینجا و آنجا صفحات پاره در هوا پراکنده بود هری فهرست کتابها را از جیبش درآورد و برای اولین بار آن را خواند کتاب ولاسا کتاب ولاسای غولها در مجموعه کتاب های درس مراقبت از موجودات جادویی بود هری خیالش راحت شد چرا که آگرید برای روز تولدش یکی ای از این کتاب ها رو به او هدیه داده بود. فروشنده اثار را از لای میلا قفص به به داخلان فرو برد و آنها را از هم جدا کرد و گفت بس کنین بس کنین دیگه هیچ وقت از این کتابال نمیارم اینجا شده دارل مجانی یه بار که دویز فره کتاب نامرعی شدن آورده بودیم فکر میکردن که کلی هنر کردم اما حتی یکی از اونها رو هم نمیتونستیم پیدا کنیم. هر که به داخل رفته بود حرفای او را نمیشنید و کتابی که روی میز کوچکی قرار داشت توجهش رو به خود جلب کرده بود. نشانهای شوم مرد. وقتی میدانیم بدترین ها را پیش رو داریم چه باید بکنیم. فروشنده با مشاهده نگاه خیره هری به آن کتاب به نرمی گفت اگه جای تو بودن این کتاب را نمیخوندم. خوندن اون باعث میشه آدم نشونهای شوم مرگ همه جا ببینه و همین باعث میشه آدم از ترس و وحشت کنه. کنه. هری همچنان به تصویر روی جلد کتاب مانده بود تصویر سگ سیاهی به بزرگی خرس بود که چشمهایی درخشانی داشت آن تصویر خیلی برایش آشنا بود بعد از خرید کتابها هری رون و هرمییون را که جلو بستنی فروشی نشسته بودند دید آنها از دیدار یکدیگر بسیار شاد شدند بعد هری رو به رون کرد و گفت پدرت نمیدونه چرا فاج از تمیه من سرف نظر کرده؟ رون که با دهان بسته میخندید شانهایش را بالا انداخت و گفت شاید برای اینکه تو توی همون هریپاتر معروف حالا اگه من امم را باد کرده بودم خدا میدونه چه برای سرم آوردن؟ بعد از آن هر سه به فروشگاه موجودات جادویی رفتند و هرمیون گربه خیالی بزرگی خرید رون هم موش خود را به صاحب موازنشان داد تا معالجه اش کند خالخالی این اواقع بسیار نعیف و مردنی شده بود رون که به خرید هرمیون توجه اینا کرده بود بعد از بیرون آمدن از فروشگاه با دیدن گربه خیالی هرمیون رون به جیب بقل برگلوم بیدهش اشاره کرد و گفت تکلیف خالخالی که میشه اون اتیاج به استراحت و آرامش داره با وجود چنین حیبونی چطوری میتونه آرامش داشته باشه؟ هرمیون گفت، اینقدر ناراحت نباش، کچپا توی خوابگاه دخترا پیش من میمونه و خالخالی هم تو خوابگاه پسرا پیش تو، مگه چی میشه؟ تفلک کچپا سام مغازه گفت، مدت تو قفسش مونده، خیلی هیچکس رو نمیخریده در راه بازگشت به پاتیل دردار روند با و کنایه گفت خدا میدونه چرا هیچکس اون اونو نخریده. آی ویزلی در مهمنخانه پاتیل دردار سرگرم خواندن روزنامه پیام امروز بود. وقتی چشمش به هری افتاد گفت: چطوری، هری؟ خوبم. هر سه امراه با کیسه‌های خریدشان نزد آی ویزلی رفتند. آی ویزلی روزنامه را کنار گذاشت و هری عکس آشنای سیریوس بلک را که به او قیره شده بود روی صفحه روزنامه دید. شام آن شب بسیار دلچسپ و دلپذیر بود بعد از شام آقا و خانم ویزلی پایین رفتند و بچه ها از هر دری گفتند و شنیدند و خندیدند در پایان وقتی حریداش به طبقه پایین میرفت صداهای غذابالودی از طرف سالان غذاخوری به گوشش رسید بلافاصله فاصله صدای آقا و خانم ویزلی را شناخت لحظه مردد ماند نمیخواست آنها بفهمند که اون به گومگویشان را شنیده است اما با شنیدن نام خودش ایستاد و به در سالان غذاخوری نزدیکتر شد آقای ویزلی با حرارت خاصی گفت. و علی نداره چرا نباید بهش بگیم حری باید بدونه سعی کردم فارش را متقاید کنم اما اون اصرار داره با حری مثل بچه ها رفتار کنه اون دیگه 13 سالشه خانم ویزلی با سماجد گفت آرتور حقیقتون را به وحشت مندازه واقعا میخوای حری رو با ترس و لرز مدرسه کنی؟ نمیخوام ناراحتش کنم فقط میخوام حواسش جمع کنه و مراقب باشه وقتی یادم میافته اون شب که از خونهشون فرار کرد ممکن بود چه بلایی سرش بیاد دلم میلزه اگه اتوبوس شوالیه سوارش نکرده بود شرط می مندم قبل از اینکه وزارتخانه بتونه پیداش کنه کشته میشد میگن بلک دیمون است شاید واقعا هم, هم باشه اما انقدر باهوشه که تونسته از آسکابان فرار کنه تا چون این چیزی سابقه نداشته واقعیت اینه که ما هیچ ردی از بلک نداریم و دستمون اون به جای برن نیست. اما در یه مورد کاملا اطمینان داریم و اون اینه که می دونیم بلک دنبال کی می گرده. ویزلی گفت اما جای حرید تو هالوارت کاملا امنه. ما فکر می جای بلک هم تو آسکابان امنه. وقتی اون تونسته از اونجا فرار کنه، قطعا میتونه وارد هاگوارت هم بشه. بلک دیونه است. میخواد حرید رو بکشه به نظر من اون فکر میکنه با کشتن حری اسمش نبر دوباره به قدرت میرسه بلک همون شبیه که حری اسمش نبر را متوقف کرد همه چیدیشو از دست داد دوازده سایه تموم که تو آسکابان فکر کرده و نقشه کشیده سکوت در فضا حک فرما شد و حری که با درماندگی میخواست بقیه اصابتان رو بشنود به ذر مزدیکتر شد باشه هر طور. هر کاری به نظرت درسته بکن فقط دامبلدور از این ماجرا خبر داره البته که خبر داره برای اینکه که های آسکابان بتونن جلوی درهای ورودی محبت مدرسه مستقر بشن باید از اون اجازه میگرفتی اون قبول کرد اما از این کار اصلا خوشش نمیاد. دامبلدور از نگهبان های آسکابان اصلا خوشش نمیاد. اگر اگه بخوای. منم از اونا خوشم نمیاد اما وقتی آدم با جادوگری مثل بلک سر و کار داره مجبور برخلاف میلش عمل کنه هری به محض شنیدن جابجا جا شدن سندلی ها با سرعت هرچه بیشتر خود را به تریا رساند و احساس کرد ناخداگاه چیزی را زیر لب زمزمه میکند من کشته نمیشم بوهبوهه رفتن به ایسکا، هری فرصتی برای صحبت با رون یا هرمیون پیدا نکرد اما در هنگام سبار شدن خودش پاپیش گذاشت و به آقای ویزلی گفت که از ماجرا آگاه است آقای ویزلی گفت هری من میدونم تو اون قدرا که فاج فکر میکنه بیدست و پا نیستی هالا هم که میبینم نمیترسی خیلی خوشحالم اما قول بده برای پیدا کردن بلک این طرف و اون طرف پرته هری با نگاهی خیره گفت چی صوت بلندی به گوشش رسید. همه با عجله سوار قطار شدند و هری به همراه رون و هرمیون به دنبال کوپه خالی گشتند همه کوپه ها غیر از آخرین کوپه پر بودند در این کوپه یک نفر بیشتر نبود مردی کنار پنجره به حالت نشسته به خواب رفته بود هر سه برای کوپه شدن و در را بستند وقتی روی سندریهایی که از پنجره دورتر بود نشستند رون آهسته گفت به نظر شما اون کیه؟ هرمیون بلافاصله جواب داد پروفسور آرژی از کجا میدونی؟ رو کیفش نوشته؟ یعنی چی درس میده؟ هرمیون با صدای آهسته زمزمه کرد خب معلومه فقط یه درس معلم نداره اونم درس دفاع در برابر جادوی سیاهه هریرون و هرمیون تا کنون دو آموزگار برای درس دفاع در برابر جادوی سیاه داشتند. که هر یک بیشتر از یک سال تدریس نکرده بودند. بین دانش آموزان شایعی بود که می گفتند این کلاس شوم است. بعد از اینکه نشستند، هری تمام بگومگوهای آقا و خانم ویزلی و عشقی را که آقای ویزلی در ایستگاه بود داده بود برایشان تعریف کرد. در نظر رون و هرمیون این خبر بدتر از آن بود که هری انتظار داشت. در این لحظه دشمنیابی که رون به هری جدی داده بود به بچه‌دار آمد. رون نظری از اوشکائی از کرد چرا که فکر می‌کرد حتماً دشمنیاب خراب بوده یا مغازدار آن را به اون انداخته است وقتی جینی کچک زنین از به ویزدی ها وارد شد قطار با تکان ناگانی متوقف شد ناگان بدون احتار قبلی همه این شراحان قطار خاموش شد و تاریکی مطلق همه جا فرا گرفت ناگان صدای درگی گفت چی شده بالاخره پروفسور لوپین بیدار شده بود همه ساکت بودند صدای ترق ترقی به رسید و بعد نور لرزانی کوپرا روشن کرد. شعله آتش در دست پروفسور لپین پریدار شده بود. در نور و آتش صورتش خسته و رنگ پریده به نظر میرسید. اما چشمهایش هوشیار و مراقب بودند. پروفسور لپین با همان صدای درگه گفت از جاتون تکون نخوری. اون وقت دستش را که شولای آتش زبانه میکشید جلوش نگه است و برخاست. قد از آنکه لپین به در کوفه برسد در آهسته باز شد. در روشنایی آتش هیکل شنل دوشی که قدش به سخف میرسید در آستانه در پدیدار شد. کلاه شنل چهرش را کاملا پنهان کرده بود. هری به سرزاپای آن موجود نگاه کرد و قلش ناگهان در فرو فروریخ. از زیر شنل دست برلاق و خاکستری رنگی بیرون زده بود که به نظر میرسید پوشیده از زخمای وحشتناکم آقشته به لجه هست مثل دست مردهی بود که در آب گندیده باشد آن تنها در لحظه بسیار کوتاه قابل درویت بود گویی موجود زیر شنل نگاه حرید را بر دستش احساس میکرد زیرا بلافاصله دستش را زیر چینهای پارچه سیاه پنان کرد سپس از زیر کلاه نفس امیر آهسته و صداداری کشید انگار میخواست چیزی غیر از هوا را به درون خود بکشد سرمایه شدیدی همه را در گرفت. هری احساس کرد نفسش در سینه حفظ شده است. سرش گیج درد. دیگر نتوانست جایی را ببیند. او در سرمایه شدیدی فرو میرفت. صدای شبیه به صدای آب در گوشش تنین اندارد. هری لحظه به لحظه پایین تر آنگاه صدای شیون ترسناک و هولنگیزی از دور به گوش رسید که آجزانه کمک می هری، اهمیت نمیداد که او کیست فقط میخواست به او کمک کند سعی کرد دستهایش را تکان بدهد اما نتوانست مه غریض سفیدرنگی درون و پیرامون او را در بر گرفته بود هری هری حالت خوبه کسی به صورتش ضربه می‌نواخت. هری چشمهایش را باز کرد و گفت چیه ها بر فراز ترش روشن بودند و قطار در حرکت بود رون و هرمیون کنارش زانو زده بودند و پروفسور لپین از بالای سر آنها حری را که از روی تندری از خورده کرده بود و بر کف افتاده بود نگاه میکرد. حری گفت چی شد؟ اون کجاست؟ که جیغ میکشی؟ صدای تققی همه را اجاب پراند. پروفسور لپین داشت شکلات بزرگی را به تکایی کوچکتر تقسیم میکرد. تکایی بزرگی به دست حری داد و گفت بیا میاره. هری شکلات را گرفت اما با آن لب نزد از لپین پرسید اون چی بود؟ لپین که در حال تقسیم بقیه شکلات بین بچه ها بود گفت یه دیوونه ساز بود یکی از همون دیوونه ساز های آسکابان تصر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com